قصه ها و افسانه های مردم هند به روایت جی ای بی گری ترجمه ابراهیم اقلیدی به سفارش کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان نالا و دامایانتی در سرزمین نیشادها پادشاهی بود به نام نالا پسر ویراسنا او در رام کردن وحشی ترین توسنها چابک و در میان تیراندازان قلمرویی خیش فرادست از همه بود نالا دانش مقدس را می دانست و سرکرده یک سپاه عظیم بود راستی و عدل را بزرگ می داشت و بزرگان کشورش را آنچنان زیر سایه خودش می گرفت که آفتاب آسمان رو شاهدخت های زیباروی بسیاری او را ستایش میکردند و درخشش زیباییش آدمیانی چون خودش رو چنان شیفته میساخت که حتی کاما خدای عشق بر حیعت انسانی او رشک میبرد. با این همه همسری نگرفته بود همچنین در آن روزگار در ویداربه ها پادشاهی به نام بهیما فرمانروایی میکرد می کرد که قدرت پرستوتش امیران بزرگ را به اطاعت امرش به زانو در می آورد. به هیما و ملکش از نعمت سه پسر بزرگزاده برخوردار بودند و چهارمین فرزندشون دختری به نام دامایانتی بود. هنگامی که دامایانتی بزرگ شد، آوازه زیباییش مثل بوی یاسمن در سراسر کشور، و در فراسوی اون پیچید با پیکر زیبا و چشمان درشتش شری الهه زیبایی رو به هماوردی میخوند در حالی که در کاخش صد کنیز او رو در بر گرفته بودند پرتو زیباییش چنان خاطر کسانی که میدیدندش به خودش مشغول میکرد که حتی ماه پشت سرنهاده و فراموش میشد آنگاه روزی چونین پیش آمد که فرستادگان نالا سرمست از توصیفات زیبایی دامایانتی به کشور خودشون برگشتند و در کاخ بهیما هم دوشیزگان خدمتکار در حضور دامایانتی پی در پی پادشاه نالا رو ستایش می کردند بدین قرار میان این دو عشقی پا گرفت که رو به فزونی نهاد و هر رو پای بنده هم ساخت هرچند دو دلداده تا کنون همدیگر را رو ندیده بودند. یک روز هنگامی که پادشاه نالا فرومانده در عشق خیش در باغهای کاخش پرسه میزد، زد، گله از قوهای سلطنتی که بالو پرشون همه زرندود بود، پیش چشمش خرامان میرفتند. او یکی از اونا رو گرفت و ناگهان پرنده به زبان آدمی با او سخن گفت. نالای بزرگ منو نکش چون من با دامایانتی میتونم چنان سخن بگم که هرگز جز تو به مرد دیگه ای فکر نکنه نالا پرنده رو رها کرد دسته قوها به آسمان پرکشیدند و یکسر به سمت ویدار روانه شدند قوهای پرشکو به پایتخت تخت رسیدند در باغ دامایانتی فرود آمدند و مایه شگفتی شاه خانم و خدمتکارانش شدند همچنان که دختران برای بازی در پی پرنده های تلایی قوی که دامایانتی دنبالش میدوید به این گونه با او سخن گفت دو شیزه زیبا زیبارو در میشادها پادشاهی به نام نالا زندگی میکنه که در میان آدمیان بی همتاست تو باید با او عروسی کنی چون ما ساکنین هر سه دنیای بالا، زیر و روی زمین رو دیدیم، اما تا کنون کسی رو به شایستگی او ندیدیم. چه زیبنده است که این قهرمان بی همتا با عروسی بی همتا ازدواج کنه. دامایانتی که اینو شنید، از پرندی طلایی خواهش کرد که از طرف او با نالا سخن بگه. در هماندم اوی باشکوه به سوی نیشادها پرواز کرد و همه چیز را برای نالا تعریف کرد. از اون روز به بعد کنیزان دامایانتی تغییراتی در او مشاهده کردند. او که زمانی بی خیال بود، حالا روزها در افکار دور و دراز غرق میشد. شد. چهره شادابش غمگین شده بود. و دیگه از هم با دوستانش شرکت در جشن و مهمانی یا خوابیدن حتی، ترفی بر نمی بست فوراً برای بهیما خبر بردند و او در این اندیشه بود که دخترش اکنون دیگه به سن ازدواج رسیده و در نظر داشت بیدرنگ جشن آسوای براش برپا کنه جشنی که دامایانتی باید در اون همسر خودش رو انتخاب می کرد بهیما چنین گفت پهلوانان بگذارید این ایام آسوایانوارا به خوبی و با حضور همه برگزار بشه. همچنان که امیران بزرگ با شکوه تمام همراه سپاهیان خیش به سوی شهر بهیما روان بودند و سلطان بزرگوار هر یک از خواستگاران رو با سپاس و افتخاری تمام که زیبنده چنین مهمانانی بود پذیرا میشد، از صدای حرکت ملازمان سلطنتی فیلها، اسبها و عرابه ها زمین به لرزه در آمده بود در همین هنگام دنیای ایندیرا دیرا سرکرده خدایان دو میهمان داشت که شریفترین پیشگویان یعنی نارادا و پارواتا بودند که مجازات طولانی و درازمدتشون تموم شده و ایندیرا اونا رو شاهانه پذیراش شده بود نارادا در پاسخ به درودهای پر از ادب و احترام ایندیرا گفت ما پروردگار جاودان رو سپاس میگیم و پادشاهان زمین نیز اونو سپاس میگن. در این هنگام کشنده دیوهای بیشمار به ناگاه اینچونین به تندی سخن گفت. چگونه است که نزدیک شدن این جنگجویان شریف رو به دروازه های بهشت نمیبینم؟ آنان که به سرنوشتشان با مرگ میشن بی آنکه از اون روی برگردونند چرا اونا رو اون مهمانان عزیز و شایسته رو نمیبینم؟ نارادا پاسخ داد شاهدخت زیبارویی به نام دامایانتی دختر بهیمای هیمای پادشاه که دوشیزهی زیباتر از او در جهان نیست تمام شاهان و شاهزادگان پیکار خودشون رو ضد بدیره ها کردند و فوج فوج دارن به جشن آسوایانوارا میشتابند و هر یک امیدوارند که او انتخابشون کنه با این سخنان تمامی خدایان نزدیک آمدند و در حالی که به شدت مسخور شده بودند، گفتند، بیاید ما هم به اونجا بریم. با این همه، هنگامی که آن نامیرایان با عربه های باشکوه در آسمان میتاختند تاختند، زیر پایشان در دور دست موجودی رو دیدند که بیشتر به دنیایی که اونا از اون می تعلق داشت تا به دنیای فان. از ها متوقف شدند، ارابه ها در دل هوا معلق ماندند، و خدایان در خاموشی نالا را مینگریستند، زیرا او بود که در جاده به شهر سلطنتی بهیما می رفت. سپس به آرامی پایین آمدند و به پادشاه که با سرعت به سوی دلبندش بندش می رفت گفتند نالای باشه که به درستی و راستی شهره ما پیامی را به تو می سپاریم آن را با امانت و درستی برای ما ببر نالا به نشانه احترام کف دستایش را برهم نهاد و گفت قول می دهم که فرمان شما را انجام دهم اما به من بگویید که پیامبر کیستم و پیامی که باید ببرم چیست؟ ایندیرا را پاسخ داد بدان که ما نامیرایانیم، من ایندیرا را هستم و این آگنی خدای آتش است این وارونا خدای آبها و آن دیگری یاماست همان که به داوری کسانی می پردازد که در حال مرگند ما به تو فرمان می دهیم که پیش دامایانتی بروی و این پیام را به او برسانی. نگهبانان جهان ایندیرا، آگنی، وارونا و یاما به آسوایانوارای تو میآیند یکی از آنان را به شوهری انتخاب کن. نالا که هنوز دستهایش را برهم نهاده بود، جواب داد اه اه اه من که خودم به همین منظور در سفرم، چطور می توانم خواستگی شما را برآورم؟ ای پروردگاران توانا مرا از این کار معاف بدارید اما خدایان به یاد نالا آوردند خودت گفتی قول می دهم که فرمان شما را انجام دهم حالا چطور می توانی آن را انجام ندهی؟ هرچه زودتر روانه شو نالا باز هم در تردید بود و پرسید خب چطور می وارد کاخ پرنگهبان به بشم؟ تو وارد آنجا خواهی شد این دیرا این را گفت و نالا را رهز پار کرد. نزدیک به پایان روز، ندیمه های دامایانتی که در دربار نشسته بودند، نایهان در کمال تعجب دیدند که چهازادهی خدایگونه در جمع آنان پدیدار شد. آنها در حالی که از شرم و دست باجگی نمیتوانستند بر زبان بیاورند، از جا برخاستند و پیوسته در این اندیشه بودند که او که میتواند باشد؟ و ساکت و سامت در برابر این همه زیبایی در یک مرد با دلهای پر آتش او را ستایش میکردند. درخشان از آتش عشق جهیدن گرفت و دامایانتی با لبخندی شیرین به سوی نالا آمد و هرچند قلب نالا از وظیفهی که خدایان بر احده نهاده بودند سنگین و زیر فشار بود اما عشقش به شاهزاده افزونتر شد و او نیز به دختر لبخند زد. آنگاه دامایانتی با حیرت تمام پرسید تو کیسی ای زیباترین این شخصاده که احساسی را که در دل من جا گرفته بود نیرومندتر کردی؟ میخواهم بدانم که تو، ای پهلوان پاک، چگونه همچون یک خدا به اینجا وارد شدی؟ چطور آمدی و چرا هیچ کس تو را ندید؟ زیرا پدرم، پادشاه، که در فرمان روایی بسیار هراسنگیز است، دستور داده که از محل سکونت من کاملا مراقبت شود پادشاه نالا پاسخ داد ای دل رباترین دوشیزه بدان که نام من نالاست و پیامبر خدایانم خدایان، این دیرا، آگنی، وارونا و یاما آنها آرزوی تصاحب تو را دارند یکی از آنان را به عنوان شوهر برگزین ای شاه دخت زیبا به قدرت جادویی که آن نامیرایان به من دادند بی آن دیده شوم به اینجا آمدم. نه کسی مرا دید و نه کسی سر راه هم را گرفت. دو ی زیبا، حالا که خبرهای مرا شنیدی به دلخواه خیش تصمیم بگیر. دختر برای عدای احترام به خدایان نادیدنی کف دستهایش را برهم نهاد و خندید و گفت شما گرچه خود پادشاهید ولی باید با بیشترین اطمینان با من صحبت کنید تا بتوانم کمکتان کنم خودم و تمامی آن چه دارم از آن شماست بنابراین فقط به من توجه کنید سرورم. آن حرفهایی که از گوه شنیدم ای شاهزاده. هنوز مرا آتش میزند پهلوان من تنها به خاطر شماست که تمام شاهان در اینجا گرد آمده اند اگر شما نیز طبع مهربانیتان را چنان زیر پا بگذارید که به من جواب رد بدهید، در آن صورت دست به دامان زهر، آتش، آب و تناب دار خواهم شد و همه اینها به خاطر توست. نالا جواب داد، وقتی خدایان این نگهبانان قدرتمند جهان منتظر پاسخ شما هستند، از من یک انسان ساده چه انتظاری داری؟ من حتی، از غبار روی پاهای آن آفرینندگان جهان ناچیزترم. بنابراین ذهنت را متوجه آنها کن مرگ سرنوشت انسان میراییست است که خشم آسمان را برانگیزد آه ای دوشیزه بینقص مرا نجات بده و آن خدایان قدرتمند را برگزین در آن صورت از جامعهایی بحر خواهی شد که غبار نمیگیرد و حلقههایی درخشان از گلهای پجمرد نشدنی، و زیباترین گوهرها خواهی داشت دامایان تیک از درد و ناراحتی اشک میریخت جواب داد من به طور شایسته تمامی آن خدایان را سپاس اما تو را ای سرور سرزمینم تو را به شوهری اختیار میکنم این عهد و پیمان من است آنگاه شاه نالا در حالی که بر برخود میلرزید و کف دستانش را به نشانه احترام برهم نهاده بود گفت از آنجا که به خدایان قول داده باید وزیفه را انجام دهم اما اگر زمانی بخت با من یار شود برای خودم از شما خواستگاری خواهم کرد و آنگاه دو شیزه زیبا بسته به میل شماست که تصمیم بگیرید بیدرنگ لبخندی شیرین بر چهره دامایانتی پدیدار شد و در حالی که به خاطر گریه کردن هنوز صدایش میلرزید، به شاه نلا گفت راهی را که به روی من است پیدا کردم ای سرور انسان ها که با انجام آن هیچ تقصیر به گردن شما نمی‌افتد. باید همه شما یعنی خودت همراه با خدایان به مراسم آسفایی آنوارای من بیایید آنگاه من در حضور آن نگه جهان تو ثروتمند قدرتمند انسان ها را برخواهم گزید. در آن صورت دیگر خطایی متوجه تو نخواهد بود در این هنگام نالا شتابان نزد خدایان برگشت که مشتاقانه منتظر خبر او بودند آنها پرسیدند او را دیدی؟ دامایانتی با آن لبخند دل چه گفت؟ آن چرا که رخ داده برای من بگو؟ نالا آن چرا که روی داده بود بازگو کرد که چگونه دامایانتی به رغم ابلاغ وفادارانه پیامش او را انتخاب کرده و آخرین کلماتش این بوده که خودت، سر قدرتمند من همراه با همه خدایان به آسوایان ورای من بیایید. من در حضور آنها تو را این نالای بزرگ برخواهم گزید. در این صورت دیگر خطایی متوجه تو نخواهد بود. نالا گفت این عین حرفهایش بود اما درباره آنچه پیش خواهد آمد شما بزرگان و سرکردگان خدایان باید حکم خود را مشخص کنید؟ روز با درخشش تمام هنگامی فرارسید که صورتهای فلکی در خانههایی میمون و مبارک در آسمان جای گرفتند و به هیما امیران را فراخواند. آنها همچون شیر که زیر درختان جنگل می هنگامی که از زیر تاقهای طلاپوش پوش به صف وارد تالار جواهرپوش پوش می شدند به خاطر چابکی همیشگیشان در اطاعت از فرمان روای قدرتمند. به سختی می توانستند شدت اشتیاق خود را پنهان کنند آنها هر یک بر یک تخت نشستند و همه تاجی از گلهای معطر بر سر نهاده و هوا را مانند آسمان شب بازیورهای جواهر نشان آراسته بودند آنگاه دامایانتی وارد جمع شد و چهره دلنگیزش چشم و دل همه پادشاهان را رو بود هزار نگاه بر آن شکل روی بی او افتاد همه سر جا مانده بودند و حتی تکان نمی خوردند. هر امیر را به نام می دامایانتی ناگهان پنج مرد را دید که آنجا ایستاده بودند و همه شکل و شمایل یکسان داشتند. او آنچنان که باید مینگریست، ولی هیچ چیز آنها را از هم متمایز نمیکرد به هر کدام که خیره میشد تنها نالا را میدید. دامایانتی در اندیشه بود که چگونه می بفهمد نالای واقعی کدام است؟ و چطور می او را از چهار خدایی که خود را به شکل او درآورده بودند تشخیص دهد؟ اما وقتی به خاطر آورد که از مردان دانا درباره نشانه هایی که یک خدا را از انسان متمایز می چیزهایی شنیده، دانست که کارش بیهوده است. زیرا هیچ کدام از آن نشانه هایی که در این پنج تن توانست ببیند، با خود اندیشید که اکنون وقت آن است که به خدایان توکل کند، بنابراین سمیمان ترین ستایش را هم با صدای بلند و هم در دل به جا آورد. کف دستانش را بر هم گذاشت و با صدایی لرزان دعا خواند هنگامی که سخن قور را شنیدم نالا را به نام زدی خویش برگزیدم. ای خدایان او را به من بنواییید گناهی نکردم نه در کلام و نه در اندیشه، آنگاه که نالا را به نام زدی خویش برگزیدم ای خدایان او را به من بنواییید. ای خدایان بالای سرم شما این رو اندیشیدید که نالا مرا به نام زدی برگزیند. آه ای خدایان او را به من بنمماید. هنگامی که نالا را به نام زدی برگزیدم پیمان گرفتم که عشق این کار را روادار. آه خدایان او را به من بنماییید قالب خاکیل نالا راه نمی تا او را بشناسم آه خدایان چهره واقعی خود را بنمایی از شما سپاس گذارم خدایان وقتی آن دعای غمانگیز را شنیدند هرچه در توان داشتند کردند تا چهره خود را آشکار کنند آنگاه دامایانتی تمام آن مینوهای آسمانی را دید، بر پیکرهایشان عرقی ننشسته بود، گلهای تاجگلشان آنقدر تر و تازه بود که انگار تازه آنها را شکیدند. چشمانشان حرکت نمیکرد و پاهایشان با زمین تماس نداشت، اما نالا به آسانی شناخته شد، زیرا پاهایش زمین را لمس میکرد. چشمانش تکان میخورد و تن به گرد و عرق آقشتش تهرنگی از سیاهی داشت دوشیزه چشم درشت فوراً به کنار او رفت گوشه پیراهنش را گرفت حلق گلی از زیباترین گلها به دور شانه‌هایش انداخت و بدین سان سرور خود را انتخاب نمود پادشاهان اندوهگین شدند اما خدایان و خیردمندان به تراب آمدند آنگاه شاه نالا پسر ویراسنا به شادی تمام برای دلجویی از عروس خیش کلامی چند بر زبان راند. چون با لبخند دل نوازت مرا در میان خدایان برگزیده ای تا آنجا که جان در دارم از آن تو خواهم بود و نزد تو بر آن سوگند می خورم و بیدرنگ این جفت شادمان از عشق خیش به سوی خدایان رو کردند و خدایان هم که شادمان شده بودند موهبتی هشتگانه بحره نالا کردند. این دیرا قدرت دیدن خدایان را هر جا که مراسم قربانی های مذهبی اجرا میشد و همچنین قدرت گذر از تمامی راهها را به سرعت و دقت نصیب او کرد. آگنی آتش را به او داد. تا هرگاه که بخواهد زیر فرمانش باشد و این هدیه را نیز بر آن افزود که هرگاه بخواهد بیگزند و آسیب در میان شعله های آن پناه گیرد یاما چشایی استادانه غذا و داشتن بالاترین مقام را بحره او ساخت و وارونا آب را به او داد تا به اراده خیش آن را تحت فرمان گیرد و همچنین حلق گلهایی به او داد که از عطری عالی سرشار بودند. سپس به آسمان بازگشتند و پادشاهان هم پس از رفع رنجوری از این شکست به سرزمین های خیش برگشتند. به هیماشاه مراسم عروسی را با تمام آداب مربوط به جا آورد و نالا و دامایانتی تا مدتی پس از عروسی در خانه او ماندند. آنگاه نالا از پدرزن خیش خداحافظی کرد و با همسرش به سرزمین نیشادها بازگشت. آنها در نیشادها ماندند و از انواع خوشبختی ها بهرمند بودند و خیلی زود از نعمت پسری به نام این را سنه و دختری به نام این سنا برخوردار شدند. با این حال، هنگامی که خدایان به امارتهای خود در آسمان باز میگشتند، یک جفت دیو را دیدند که نزدیک می شدند. این دیرا سرکرده خدایان خطاب به دیو کوچکتر گفت کالی با همدست خود پارا کجا می روی? آنها گفتند به آسوایانوارای دامایانتی می رویم زیرا در نظر داریم او را به همسری خود در آوریم. این دیرا خدیکنان جواب داد خیلی دیر کرده ای آسوایانوارا تمام شده و او از میان ما نالا را به همسری انتخاب کرده است. آنگاه کالی دیو در میان تقیان خشم خود سوگند خورد که نالا و خوشبختی او را پایمال کند. اما خدایان به او هشدار دادند که نفرین و لعنتش در مورد نالا بیهوده است و به راه خیش رفتند. کالی رو به هم دست خود کرد و گفت عهد میبندم که نالا را از قلم روی پادشاهیش و از خوشبختیش در کنار همسرش دور کنم. تو دوا پارا. باید او را با بازی تاس بفریبی و به این طریق می توانیم به مقصودمان برسیم این دو دیو فرومای دوازده سال تمام کاه نالا را تسخیر کردند تا آنکه سرانجام یک روز فرصتی به دست آمد نالا با پای نشسته به نماز رفت و کالی فورا در آن لحظه فرصت را غنیمت شمرد که در قلب او نفوذ کند پس پوشکارا برادر نالا را فرا خواند و گفت پوشکارا بیا با نالا بازی کن به کمک من میتونی تمام سرزمینش رو از دستش در بیاری بنابراین پوشکارا به نالا نزدیک شد و گفت بیا تاس بازی کنیم برادر نالا که مشتاق بازی بود نتوانست در برابر چالش و اصرار او مقاومت کند و همه چیزش را روی پرتاب تاس ها گذاشت و ثروتش از و همه چیزش را باخت شهروندان جلوی دروازه ها آمدند رای زنان گره هم آمدند و اربابانان را به عنوان سخنگوی خیش نزد دامایانتی فرستادند تا از او درخواست کنند که سرور خود را از این کار باز دارد. اما هیچ سودی نداشت. حتی شبنم غممنگیزه اشک های ملکی زیبارو نالا را از بازی باز نداشت. دامایانتی زیبارو دوباره پیش وارشننی های برگشت و او را راضی کرد که، سرورم دیگر به آنچه چه میگویم گوش نمی دهد. بنابر این دو فرزندم را به شهر پدرم شهر بهیما ببر. بارشنیای نیکسرشت هنگامی که سوار بر عرابه ایندرا سنه و ایندرا سنا را به سرزمین ویداربها میبرد، تاس هنوز پرتاب میشد و طی یک ماه گنج گنجها، کاخ، پادشاهی و همه چیز نیشادها برباد رفت. وقتی پوشکارا پادشاهی را به چنگاورد آورد، بیدرنگ دستور داد که هرکس نالا را به دوستی بگیرد به بیرحمانه ترین مرگ محکوم می شود. بنابراین نالا یک تا پیرهن بیرون دروازه های شهر سرگردان شد و تمامی حیثیت و ثروت باشکوهش از میان رفت. دامایانتی در پی او میرفت و میدید که سعی دارد چند پرنده زرین پر را بگیرد. نالا دامنش را روی آنها میانداخت اما آنها مسخرکنان پرواز می کردند. لباسش را می‌دریدند و می‌گفتند ای پادشاه ما تاز بازی هستیم و آمده‌ایم آخرین بخش داراییت را بگیریم نالو وقتی دید که دیگر هیچ چیز برای گشت نمانده رو به زن غمگینش کرد و گفت حالا که هیچ چیز ندارم باید به سرزمین پدریت برگردی چون دیگر نمی‌توانم از تو مواظبت کنم با این همه هرچی التماس کرد همسرش از کنارش نرفت و نه از رار برای اینکه با هم به سرزمین پدرگشت برگردند دست برداشت. آنها خسته و کوفته از راه رفتن تشنگی و گرسنگی نزدیک اتاق محقری در جنگل رسیدند و چون بستری نداشتند که بران بیاسایند همان جا در میان گلولای آرمیدند. در حالی که تنها یک پیراهن داشتند که خود را بپوشانند. اما هرچند دامایانتی به خوابی عمیق فرو رفت، نالای تسلی بخش به خاطر اندیشه وحشتناک همه چیزهایی که از دست داده بود نمیتوانست بخوابد و دور تا دور اتاقک قدم میزد. بین ماندن در کنار همسرش یا رها کردن او به امید آنکه به سرزمین پدریش برگردد مردد بود همچنان که این سو آنسو قدم میزد ناگهان چشمش به شمشیری درخشان افتاد که از یک تیر چوبی آویخته بود نالا با آن شمشیر تنها پیراهنی را که داشتند به دو نیم کرد آنگاه نیمی از آن را روی ملکه خفته خیش انداخت و نیم دیگر را به دور خود پیچید و آماده شد که از آن اتاقک فرار کند اما با تردید میرفت و برمیگشت و سرانجام چون کالی سراپای وجودش را تسخیر کرد پا به فرار گذاشت آنکه آفتاب و باد او را اند اینک برهن بر زمین آرمیده است آنکه خواب لبخند ملی هش را در خود نهفته است چه سرنوشتی نصیبش خواهد شد زیبارویی چون او را ترک گفتم در جنگل سرگردان خواهد شد ای آفتاب با و بادهای بهشتی جان او را به شما سپردم اندکی پس از رفتن نالا دمایانتی بیدار شد و چون دریافت که سرورش از آنجا رفته است از شدت نراحتی ناله و فقان کرد و این سو و آنسو رفت به این گمان که شاید او را ببیند که پشت این یا آن درخت پنهان شده است. شاه دخت زیبارو، وار این سوانسو می و همچنان که سرگردان میگشت، روح شریری را که سرورش را در چنگ گرفته بود و از پادشاهی و سرزمینش دور کرده بود نفرین کرد ناگهان همچنان که از کنار شکنجهای سخرها می گذشت افعی غول پیکری به سویش خزید و او را در چنبره خود گرفت اما همین که حواظش سر جا آمد، باز هم آخرین کلماتش برای سرورش بود، کسی که باید در کنارش میماند. همچنان که دامایانتی ناله و زاری میکرد، شکارچی جنگلنشین صدای گریههایش را شنید و شتابان به سوی او دوید و با زربه مرگبار افعی را کشت. شکارچی مدهوش از زیبایی زنی تنها و بیپناه قصد تصاحب او را کرد. دامانیانتی که از نیت شوم مرد آگاه شد به خاطر آنکه میخواست او را به بیوفائی نسبت به همسرش وادارد، بیدرنگ نفرینش کرد. در یک دم شکارچی بی جان بر زمین افتاد. آنگاه دختر بهیما سه روز و سه شب سرگردان بود و گاه و بیگاه سرورش را به نام میخاند و همواره بر این آرزو بود که صدای آرامش دهنده اش را بشنود. هنگامی که آرام آرام از کوه ویراسنا که پیکر پدر همسر عزیزش در آنجا آرامیده بود بالا می رفت، شیرهای کوهی که در حیعت زیبای او فرمان نالای پادشاه را میدیدند با احترام تمام از سر راهش کنار میرفتند و راهشان را به طرف رودخانه کج می کردند دامایانتی پس از سه روز و سه شب جستجوی دائم ناگهان به سه پارسا برخورد کرد که در حجراهای کوچکشان آرمیده بودند. هنگامی که آنها از او پرسیدند کیست تمامی داستان غم را برایشان باز گفت و آنها یک صدا چونین پیشگویی کردند. بانوی خوب رو زمانی فرا خواهد رسید که نالا بار دیگر با تو که وفادارانه در کنار او هستی؟ به دادگری بر شهر خیش فرمان روائی کند و آن پارسایان آتشهای مقدس و اتاقکهای محقرشان همه با این سخنان غیب شدند و دامایانتی را که سرگردان از کنار درختان آشوکا تپه ها و جویباران بسیار میگذشت در بحت و حیرت رها کردند آنگاه دامایانتی با گذشتن از کنار رودخانه پهناور و آرام به کاروانی از بازرگانان عصبها، فیلها و گاریها رسید. برخی با دیدن وضعیت نامرتب و پریشانش او را با جادوگران اشتباه گرفتند و حراسان پا به فرار گذاشتند. اما شوچی شجاع سرپرست کاروان میدان را خالی نکرد و به پرسش های دامایانتی جواب داد که هیچ جادران منطقه وحشی و غیرقابل قابل عبور، نالا را ندیدند اما اگر او بخواهد میتواند به آنها که تابع سرزمین سوباهو پادشاه چدیس هستند بپیوندد. بنابراین به سفر ادامه دادند و شبانگاه به دریاچه زیبا رسیدند در آنجا پس از آنکه خودشان غذا خوردند و به چهار پایانشان غذا دادند همه به خواب فرو رفتند اما دریق که در سکوت مرگبار شبانگاه فوجی از فیلهای وحشی به آنجا رسیدند و هنگامی که بوی حیوانات رام شده کاربان را شنیدند به طور میانبر از میان خیمه و خرگاه گذشتند و بسیاری از بازرگانان را زیر پا له کردند. فریادهای بلند رنج و درد همراه با صدای نفرین در حق زن بینوایی که تمامی تقصیر را به گردنش نهادند شب را فرا گرفت دامایانتی مایانتی نام خود را میشنید که دشمنمش میدادند و وحشت زده از کاروان میگریختند. او هم گریخت و هنگام فرار در جستجوی نشانهای از خدایان بود که توضیح دهند به چه علت او این بدبختی را بهره حامیان هیچ کرده است اما از هیچ نشانهای خبری نشد و به هیچ کس بر نخورد. جز برهمنهایی که تا رسیدن به شهر صباهو همراهیش کردند در آنجا مادر سوباهو او را همچنان که از دروازه شهر به درون می آمد دید. آدمی پریشان و شوربخت که هنوز هم شکوهی والا از زیبایی داشت و فورا ندیم اش را از کاخ به بیرون فرستاد تا زن سرگردان را به آنجا ببرد. بار دیگر دامایانتی داستان بدبختیهایش را باز گفت و مادر بزرگزادی سوباهو دردم به او و عده خانه ای امن آرام و دوستی با دختر خود را داد دنیز قول داد که مردان جنگی برای جستجوی شوهرش بفرستد نالا هنوز چندان از دامایانتی دور نشده بود که چشمش به آتشی عظیم افتاد که در جنگل زبانه میکشید و صدایی از میان شعله ها شنید که می گفت فوراً بیا اینجا نالا، فوراً بیا نالا شتابان به میان شعله ها رفت و پادشاه ماران را دید که آنجا چنبر زده بود بدان که من کارکوتاکا هستم و دفرین شده‌ام که آنقدر در اینجا بمانم تا نالا مرا نجات دهد پس مرا از اینجا بردار اژدها همین که این را گفت چروک خورد و به اندازه یک انگشت درآمد نالا او را برداشت و از میون ها بیرون برد بار دیگر افعی با او سخن گفت حالا دیگر به راه خیش برو و قدمهایت را بشمار من تمامی چیزهای سعادت بخش را به تو خواهم داد. همین که نالا قدم دهم ده را شمرد، افئی او را نیش زد و ناگهان شکلش دگرگون شد. افئی گفت آسوده باش، زیرا کالی که بدنت را گرفتار خود کرده است، اینک درون تو در شکنجه خواهد بود. بی حراس پیش برو ای پادشاه، از این به بعد تو را به نام واحوکای عرابران میشناسند. نزد نزده ریتو پارنا برو، که در مملکت آیودهیا فرمان میکند می کند. او به تو مهارت در تاس بازی را خواهد بخشید و تو به او دانش رام کردن اسمان سرکش را میآموزی و به این طریق سرزمینت، همسرت و کودکانت را دوباره به چنگ خواهی آورد وقتی آنها را یافتی، مرا به یاد بیاور و این جامعی را که اکنون به تو می به بتن کن و به این ترتیب دوباره شکل واقعی خیش را باز خواهی یافت افعی این را گفت و ناپدید شد آنگاه نالا همچنان که افعی به او فرمان داده بود یک راست پیش رفت و روز دهم ده وارد شهر ریتو پارنا شد و بیدرنگ به خدمت پادشاه رفت نالا گفت من واهوکا که در رام کردن اسبان و افزون بر این در تهیه غذا و بسیاری چیزهای دیگر مهارت دارم حاضرم در خدمت شما باشم ریتو پارنا بی هیچ حرفی او را به عنوان مهتر اسبان خیش به کار گمارد و وارشنیا و جیوالا نیز دستیار او کرد نالا آنجا ماند و هر شب این دو بیت را میخواند. رنج از گرسنگی و تشنگی دلدار زیبا رویم کجا می آنگاه انگاه که اندیشناک همسر نادان پیش است او که به زیبای خود حضورش را می آراست. جیوالا تنها چیزی که از او فهمید این بود که تنها به خاطر اشتباهش زنیبی همتا را از دست داده است. اینک شاه به هیما را به هر سو گسیل داشت تا به جستجوی فرزندش دامایانتی و شاهنالا بپردازند. و برای دسترسی به روستایی که گمان میرفت در آن باشند هزار گله گاو و جایزهای بزرگ وعده داد. حتی در برابر خبری که از آنها میآوردند هزار گله گاو دیگر پیشنهاد کرد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که برهمانی به نام سودوا به پور آمد و در آنجا دختر پادشاه و سرور خیش را دید که کنار سوناندا ایستاده است. در حالی که جمال بی مثالش از میان نشانه هایی که ماجراهای عذاباور بر او نهاده بود به نحوی کم فروغ می درخشید صدوای نیکسیرت هنگامی که به دقت به او خیره شد فهمید که اگر سخنانی تسلی بخش به او بگوید و اطمینان بدهد که پدر، مادر، فرزندان و برادرانش همه خوبند او را بسیار شادمان خواهد کرد دامایانتی که این را فهمید پیاپه پی احوال تمامی دوستانش را از او پرسید. چون مادر سوناندا این مکالمه سمیمان را شنید، فوراً به همان جا که سودوا ایستاده بود آمد و با او سخن گفت. ای بره این بانو کیست؟ به نظر رسد که تو او را میشناسی. او همسر کیست؟ لطفاً تمامی سرگذشتش را برای من بگو. سودوا در این هنگام شروع به گفتن سرگذشت دامایانتی و نالا کرد. و ملکه دریافت که دامایانتی خواهرزاده خودش است زیرا او و مادر دامایانتی با هم خواهر بودند آنگاه دامایانتی از ملکه مادر پرسید که آیا می با او خداحافظی کند و به جایی که فرزندانش هستند برود ملکه بیدرنگ ملازمانی قدرتمند را به همراه دامایانتی و سودوا فرستاد که بتوانند به سلامت به سرزمین بهیما به برگردند همین که به آنجا برگشتند و سودوا پاداشش را گرفت، دامایانتی یک شب استراحت کرد و سپس از مادرش تقاضا کرد. اگر اجازه بدید به وظیفه مهم خودم یعنی برگرداندن شوهرم به خونه بپردازم. و بیدرنگ ملکه به هیما را تشویق کرد که گروهی دیگر گسیل دارد. این گروه پیش از عظیمت در برابر دامایانتی گرد آمدند و او به آنان این پیام را داد. هر جا که دیدید مردم جمع شدند لطفا این سخنان رو بارها و بارها تکرار کنید ای قمار باز که نیمی از جامعه مراد دریده ای کجا می روی؟ اشق من چرا رهایم کردی؟ اشقت در جنگل به خواب رفته است؟ او به فرمان تو چشم راحت است؟ آنجا میماند منتظر سخنان تو ویران شده در اندوه خیش دختری که نیم جامعه به تن دارد در اندوه عمیق خیش خاموش آه میکشد و به خاطر تو سربر عزیزش غرقه در اشک است پهلوان از سر لطف تقاضای او را برآور؟ و پاسخی کوتاه به او بده همواره باید حمایت و حفظ شود زن از سوی شوی خیش چرا این هر دو را واگذاشتی تو که قانون تمامی زندگیت بود تو همواره به مهربانی بزرگزادگی و دانایی شهرت داشتی؟ اکنون چگونه نامهربان هربان گشته ای. میترسم که بخت من به خواب رفته باشد. مرد ببر آرامش خود را به من ببخش. سرورم به من رحم کن. برترین وظیفه میان وظایف مهربانی است. من از تو این سخن درست را فرا گرفته ام ای ادامه داد اگر کسی به این سخنان پاسخ داد بفهمید که دقیقا کیست و کجا زندگی می کند و جواب او را برای من بیاورید دیر زمانی گذشت تا یکی از بهرحمنان به نام پارنادا نزد دختر بهیما به برگشت و چونین گفت ای دامایانتی هنگامی که در پی نالا میگشتم گشتم به آیودهیا رسیدم و با آنکه در آنجا پارنا و تمامی همراهانش را بارها و بارها مورد خطاب قرار دادم، هیچکس جوابی نداد. اما وقتی شاه مرا مرخص کرد، تنها نشسته بودم که یکی از اهل خانه، به نام واهوکا، کالسکرانی بدشکل با دستهای کوتاه کنار من آمد و این کلمات را بر زبان راند. آنکه مردی شور بخت ابلهی ناشاد او را رها کرد و این کار مرد او را به خشم خروش بر انگیخت آن که جامعش را هنگام شکار پرندگان رو بودند و سرنوشت آن را سوزاند و حتی این نیز دختر سیاه چشم را نسبت به مردش خشمگین نساخت چه خوشرفتار و چه بد بدرفتار شوهر را پیوسته گریخته میبیند از سرزمین و بیخواسته و بخت برکنده از سرزمین و تخت. همین که دامایانتی این را شنید نزد مادرش شتافت و دستور داد سوداوا را فراخانند. به پارنادا پاداش های ارزنده و بسیار بخشید و قول داد وقتی نالا برگردد، هدایای گرانبهاتری به او بدهد آنگاه به سودوا فرمان زیر را داد به آیودهیا برو و طوری باری تو پارنا حرف بزن که انگار تصادفاً به اونجا رفتی به او بگو دامایانتی دختر پادشاه بهیما به دوباره آسوایانوارا گذاشته تمام شاهان و شاهزادگان به اونجا میشتابند این بار در سپیددم فردا وقتی که آفتاب سر میزنه او همسر خودش رو انتخاب میکنه اگه می برنده بشی، شتاب کن چون هیچکس کس نمی که آیا نالا زنده است یا مرده. سوداوا فوراً به راه افتاد و به سرعت تیه مسافت کرد تا به آیودهی رسید. ریتو پارنا وقتی سخنان پیک دامایانتی رو شنید، عربران خودش واحوکار و فرا و نالای ناشناس رو اینطوری مورد خطاب قرار داد. میخواهم به ویداربه ها بروم و صبح زود به آنجا برسم چون دامایانتی در آنجا آسوایاموارا وارا میگذارد. عرابران بیچاره متحیر ماند. مطمئن نبود آیا آنچه را شنیده کاملا باور کند یا نوعی نیرنگ از جانب دامایانتی بداند؟ سرانجام تصمیم گرفت فرمان ریتوپارنا را انجام دهد به این امید که شاید بتواند کاری هم برای خودش بکند؟ بنابراین فوراً به استبلهای شاهی رفت و تمامی اسبان تیز رو را زیر نظر گرفت و چهار اسب سندی زیبا را که نشانی کامل سرعت و نیرو هستند و بهتر از همه به نظر می رسیدند برگزید. همینطور که عربران پیش می رفت ریتو پارنا و وارشنیا نشسته و از چوبک دستی او متحیر بودند. وارشنیا با خود می گفت که نکند این همان ماتالی گردون ران خدایان باشد یا شاید او از نظر چابک برابر با نالایی باشد که روزی شهره همگان بود. همچنان که عرابران شتابان به سوی شهر بهیما می رفت این پرسش و پرسش های بسیار دیگر اندیشه وارشنیه را به خود مشغول داشته بود. آنگاه ریتوپارنا تصمیم گرفت که مهارت خود را در زمینه اعداد به عرابران نشان بدهد. و گفت آن درخت بیبی بی را میبینی؟ میتوانی بگوی چند برگ آن ریخته؟ صد و یک برگ؟ چند تو از میوه‌هایش افتاده؟ و آن دو شاخه آیا میتوانی بگویی ده هزار در پنج برگ دارد؟ بیدرنگ واهکا از را متوقف کرد و گفت نمیتوانم آن چرا که تو میگویی ببینم پادشاه بگذار به و همچنان که وارشنیا مهار را در دست دارد به رام اموریتو توپارنا پاسخ داد برای تأخیر و ماندن وقت نداریم واهوکا خواهش کرد یا یک لحظه بمان تا من به شما یا بگذار واشنیا تو را به ها ببرد اما شاه دوست نداشت که بدون عرابه واهوکا سفر را ادامه دهد بنابراین اجازه داد که بخشی از یک شاخه را برای امتحان به در همین لحظه واهوکا فوراً از عرابه بیرون پرید و شاخه را کند و گفت پادشاه ها درست گفتید همان تعداد میوه که گفتید در آن است. حاضرم برای پی بردن به رمز این دانش هرچه بخواهی بدهم. به راستی اگر لطف کنید و این دانش را به من یاد بدهید، من هم دانش و مهارت خود را در زمینه اسب‌ها در اختیار شما قرار خواهم داد. ریتوپارنا که نگران رسیدن به شهر بهیما بود، بیدرنگ پذیرفت و همین که مهارت او در زمینه بازی به نالا منتقل شد، کالی از کالبد نالا به بیرون پرواز کرد. و زهر تلخ کارکوتاکا را بالا آورد. نالا میخواست کالی را نفرین کند که او التماس کرد و گفت من مدتها با رنج و درد از طریق زهر افعی که در بدن تو بود زندگی کردم. اکنون تمنای عف دارم ای پادشاه و هر مردم تو را ستایش کنند دیگر هیچ ترسی از من در دل آنها باقی نمیماند. کالی با این کلمات بیان آنکه هیچکس جز نالا او را ببیند وارد درخت پیچ در پیچ ویبیهی شد آنگاه نالا همین که شمارش میوه ها را تمام کرد با غرور تمام به عراب سوار شد و در حالی که از دست کالی دیو آزاد شده بود دوباره قدرت بدنیش را به کمک خواست و به سوی ویداربه ها پیش راند هنگامی که در ویداربه ها شامگاه میشد نگهبانانی که روی دیوارهای کاخ ایستاده بودند ورود ریتوپارنا را اعلام کردند و همه کسانی که درون کاخ بودند صدای هجوم شکوهمند اسبان نالا را شنیدند. وارشنیا و نالا که هنوز هم به شکل واهوکا بود، از عرابه بیرون جستند و مهار اسب‌ها را رها کردند. آنگاه ریتوپارنا پایین آمد و به دیدار بهیما رفت. بهیما که از نقشه دامایانتی خبر نداشت، به شاه خیر مقدم گفت و دلیل این دیدار را پرسید. ریتوپارنا که تجسم خرد بود، وقتی هیچ گونه تدارکی از جشن و هیچ نشانی از خواستگاران رقیب ندید، تنها به گفتن این سخن بسنده کرد. ما برای سلام و احوال پرسی شما آمده ایم، ای بهیمای بزرگ. اما بهیما نیز در این اندیشه بود که ریتوپار را به قطع و یقین پای در سفری بیش از 100 فرسنگ نگذارده که تنها سلامی به او بکند. با این همه او که خود نیز آدم دانایی بود، به همین اکتفا کرد که منتظر بماند تا موضوع خود به خود آشکار شود. بنابراین پس از آن که به رسم معمول از میهمان خود پذیرایی و او را سرگرم کرد، به او شب خیر گفت و برایش آرزوی خوابی خوش کرد. اما خود دامایانتی نیز اگر صدای تاخت اسبان نالا را نشنیده بود و تنها ریتوپارنا پارنا، با وارشنیا، و واحوکای تغییر قیاف داده را دیده بود میزان حیرتش کمتر از دو پادشاه نبود او کلفت خود کشینی را صدا کرد و گفت کشینی برو بپرس که اون ارابرانی کوتاه دست کیه؟ شک ندارم که نکنه اون نالا باشه با این همه مراقب باش که درست همونطور که پارنادا جلوی تو صحبت کرد حرف بزنی زود برگرد و جواب منو بیار کشینی برای انجام معمولیت خیش رفت و به عرابران نزدیک شد گفت شاه دخت دامایانتی مرا فرستاده و به شما سلام میکنم و میپرسم که از کجا و به چه قصدی آمده اید و هوکا جواب داد اربابم کاؤسالا پادشاه از بهرحمنان درباره دومین آسوایانوارای بانوی شما چیزهایی شنیده بنابراین با من که عرابران او هستم تونتر از باد به اینجا رسیده است سپس کشینی پرسید که همراه او کیست؟ هوکا جواب داد او وارشنیاست که عرابران نالا بود هنگامی که نالا فرار کرد و کسی ندانست به کجا او هم به آیودهیا رفت کشینی در ادامه پرسید یادت میاد که برحمن وقتی به آیودهیا رسید چه گفت؟ ای قمار باز که نیمی از جامعه مرا دریده ای کجا می عشق من، چرا رهایم کردی عشقت در جنگل به خواب رفته است او به فرمان تو چشم به راحت است آنجا میماند منتظر سخنان تو ویران شده در اندوه خیش دختری که نیم جامه به تن دارد در اندوه عمیق خیش خاموش آه میکشد و به خاطر تو سرور عزیزش غرقه در اشک است پهلوان از سر لطف تقاضای او را برآور و پاسخی کوتاه به او بده شاهزاده خانم من می‌خواهد بار دیگر کلماتی را که تو در آن هنگام بر زبان آوردی بشنود هنگامی که عرابران این شعر را شنید دوباره قلبش از اندوه به لرز افتاد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 و حتی این نیز دختر سیاه چشم را نسبت به مردش خشمگین نساخت. چه خوش رفتار و چه بد رفتار، شوهر را پیوسته گریخته میبیند. از سرزمین و بیخاسته و بخت برکنده از سرزمین و تخت. کشینی رفت و تمامی داستان و شیوه بازگوی آن را برای دامایانتی نقل کرد. وقتی دامایانتی توصیفی را که خدمتکارش میکرد شنید بیش از همیشه یقین پیدا کرد که او نالاست. اما بار دیگر کشینی را فرستاد و به او دستور داد و گفت مواظب باش که همه کارهایش را زیر نظر داشته باشی. مخصوصا مواظب باش که به او آتش و آب برای آماده کردن غذای اروابش ندهند، چیزی نگذشت که کشینی با این داستان عجیب برگشت. او به درهای که نزدیک میشد سرش را خم نمیکرد. بلکه درگاهها خود را بالا میکشیدند تا اجازه دهند او بگذرد. وقتی برای تدر که غذای ریتوپاررن آمد همین که به ظرف نگاه میکرد، میدید که پر از آب هستند. به آتش هم نیازی نداشت، زیرا تنها مشتی علف خشک برداشت و همینی که آن را به طرف خورشید گرفت، مشتعل شد. او نه تنها بدون بیم به آتش دست میزد، بلکه حتی گلهایی که میچید، پس از آنکه آنها را به دست می گرفت کاملا تر و تازه می شدند. که این را شنید قانع شد که این سرور اوست که به شکل واحوکا در است. اما کشینی را به معمولیت نهایی فرستاد و گفت برو و بیان آنکه تو را ببینند کمی از غذایی را که واحوکا آماده کرده برایم بیاورد. خدمتکار شایسته بار دیگر به سرعت وظیفه خود را انجام داد و بیان آنکه و متوجه شود اندکی از غذای او را برای بانوی خود آورد همین که دامایانتی آن را چشید این کلمات از دهانش بیرون آمد ارابران نالاست و بیدرنگ دو فرزندش را با کشینی نزد او فرستاد وقتی که نالا فرزندانش را دید به تندی از جا جست و آنها را در آغوش گرفت ارابران ار که فکر می کرد دامایانتی به دنبال شوهری دیگر است، میان عشق به فرزندانش و حفظ شکل تغییر یافته خیش گرفتار بود و نمیدانست چه کند؟ که ناگهان دامایانتی در برابرش ظاهر شد و به سادگی از او پرسید چه خطایی درباره شوهرم از من سرزده که او باید مرا اینگونه ترک کند و در جنگل تنها بگذارد و برود؟ آه تو پیمان ازدواج کجا رفت؟ نالا پاسخ داد این کالی بود که مرا به این کار وامی داشت و کردار خود من نبود اکنون که او از تن من بیرون رفته دوباره اینجا هستم اما اینک چگونه بانوی بزرگزاده من همسر دیگری اختیار می کند؟ جواب داد این فقط یک پوشش بود از پار شنیدم که تو کجایی و می دانستم هیچ کس یک روز از آیودهیا تا اینجا با عرابه بیاید. روح باد را گواه می گیرم که به تو وفادار مانده ام هم. همین که این را گفت صدای باد از دوروبرشان برشان به گوش رسید ای پادشاه دامایانتی به پاکی لحظه است که او را ترک گفتی تمام این سه سال او را زیر نظر داشته ایم بدان که این آسوایانبارا تنها به خاطر تو تر شده تردیدهای خیانتبار را یک سر دور بریز و همسرت را در قلب خود جای ده. همراه سخنان باد گرد آنها گل میریخت و نغمه خدایان از فراز سرشان به گوش میرسید آنگاه نالا جامعه آسمانی را که اجدرمار به او داده بود آورد و برتن کرد و به شکل اصلی خود بازگشت آن دو دیر زمانی کنار یک دیگر نشستند و های خود را برای هم گفتند و به خوشی و شادمانی زندگی کردند